بی هنران هنرمند را نتوانند که بینند امچنان که سگان بازاری سگ سید را مشغله برارند و پیش آمدن نیارند. یعنی سفله چون به هنر با کسی بر نیاید به خبسش در پوستین افتد. کند هر غیبت اسوق کوتاه است که در مقابله گنگش بود زبان مغا